و الحمد رب العالمين و على اللہ رسول الله و آلح قیبین و طافرین و معصومین و و از در باده هرمت رشده از و قبل از که بخواهیم حساب روایات یا آیات نگاهی رو کنیم قطعاً حکم عقل اقتضا میکنه حکم عقل اقتضا میکنه در برستلام خودشون عقل عملی در بخش سیاست مدن اقتضا میکنه که اگر بنا بشه نظام اجتماعی با فول جا بجا بشه جامعی نخواه کنه حالا میخواد از کار خزایی باشه یا نظام اداری باشه این حکم قطعی عقله یعنی اون حکم قطعی عقل که نظام و قانون رو برای حفظ جامعه لازم میدونه اگر بناباشه نظام و قانون با پول یا با اعتبار با حیثیت اصلا جابه جابه شه چیزی نخواهد بود خطعا نظام از بین خواهد بود البته این یک مفهوم آم نیست شاید شامل رشوه و معنای دیگری که ما موخی بگیم نشه مثلا هم فرض کنید. یک کتابی در ملکه قاضی بین میسی یا قدیده رمضانهی بین میسی که قاضی رسا به خاطر او حکم رو عرض لپنه همین چون که سابقا گذاشت این رشو بفتنشی قرف این رشو میگن این عنوانه لازم بالاخره خرمتش زاده حالا ازباب اعانه بر از یا به عنوان همین سعی بر اصطلاح اقتصاد نظام ولدین یسال فلعرض خساد یه نوع فسادت رو ارز ایجاد می کنم پس این مقدر اجمالا جایی بحث داره اما گفتیم به خاطر جهاتی که در آیات و روایات و تمسکات اصحاب و نکات فرمی که ممکنه باشه تعرضی بشه تا اینجا گفتیم دوتا آیه به شمسک شده که آیه سخته که البته واضح نیست دقیقا آیه آیه سخت ما یک تایفه نیست که گفته شده کثیرن در یک آیه دیگه یا ماه کل اونها بوده مطابقه این که آیه صحبت اول هم در منافقین هم در یهوده مطابقه مثلا خودمان تا همین خود بود که فقط ماه یهوده آیه که راجع به منافقین هم هست فقط یهوده تنها نیست و شاید هم در آیه مبارکه مراد از صحبت مجموعه گناه هایی باشه که ریشکنه برندازه گناه هایی که نابود میکنه جامعه و شاد مساق بارزش صرف در روایات روشه بوده روایات دیگه داریم که بیشتر ایشان و توجیهش گذاشت که شاد اصلش شده برای الهام باشه این توجیهات بودش که اما اونی که در کتب اهل سنت هم امر رسول الله اهل خصوص شده از اون آیه مبارکه به هر حال حرف بدی نیست مساق بارزه که چیزی که جامعه رو ریشه جامعه رو میکنه و حلاط میاره و سال میاره از اصل از ریشه، از بینی میبره همین بازی با قانون توسط پول، قدرت اعتبارات و این دیگری ای که هست این راجع به این آیه. به احتمالا به آیه من لم یحکم به معنظر الله هم تصور به استدلال شده باشه خود آیه در ببایات نیامده لکه امزاله کفت به الله العظیم آمده احتمالا اشاره به با آیه باشه این حرف بدی نیست اینم هم انصافا حرف بدی نیست البته از کردن آیه ظالمون هم داره فاسقون هم داره شدیدش کافرونه رضا با از قاعده چون که صد آمد نورت هم پیش ماست نام احمد نام جمله هم بیاس. حالا در روایات کافرون رو گفتن چون اون دو پر هم می بیره. هم ظالمون یا فاسقون از این جهت تأکید روی کافرون شده این هم حرف بدی نیست اصافه هم روایاتش فراوانه نصد با خودش و هم این از اهل صحابه شروع شده و اصوله. یعنی شاید هم بخواستن اینطور طور درست این منافعین یا یهود رشوه و کارهای زش سمن الخرم، سمن کذا، سمن المیته تمام اینها از سخت بوده لیکن اون رشوه مصطحه بارز من لمیحکم نه سخت از اون درجات بسیار بسیار بالای سخته بیش از صحبت متعارفه این هم آیه دوم بود آیه سوم همین آیه بود که دیروز شروع کردیم در توضیحش لا ترکل و اموالت بین کن باطل و تو دنوبه ها الهد حکام از خب احتمال میدین که این آیه مبارکی یعنی این بخش از سوره بقره، احده از تشریعات و پشت رموده چون درست این آیه مبارکی دقیقا بعد از مسئله صومه بعد از اون سه چهار آیتی درواز روزه هست این آیه آمده فاصله نداره دقیقه هم و بعد از این آیه بعد از این آیه مبارک کلام کنگی و راجی. از الانه که اهل قلیه مواقعی تو به ناس مثلی که به نظر احکام متعدد باشه یعنی جدا جدا شده این یک حکمه اون یک حکمه اده از تشریعات حالا ما که احل چیز نیستیم یکی کسی اسلام خواهد آیات سوره بقره به لحاظ حکم شماره گذاری کنند، اما نه به لحاظ آیات، این یک حکم دیگری است. ولاد تأکل و اعمال کن. از ما بین آیه صوم و آیه اهل واقع شده است. احتمالاً یا آیه بررسیها مستقل باشه الا آیا حالا ولاد تأکل و اعمال کن بین کم بل باتل و تجلو بهارالحکم، ل تأکل و فریغ من اموال ناسیبل ایش وقت در زید این آیه البته جورایی دیگم این چون کتب احل سنت این قسم در سنت سنته بهتر زد کرده. قیل نون ازنفی عبدان ابن اشوال حضرمی ادعا مالن علا امرال قیس الکنگی وقت سماعیل النبی صلی الله علیه و آله فهم کره کر امرال قیس و اراد ان یهل فنزلت هاد ال و کف فعن الیمین و حکم عبدان فی عرضی ولن یا خاسم وقتی خداون فهمید که لا ترکول انواد کن خودشم فهمید که قسم نفرد و بله حق با ایشان است و اون زمین رو بیشون داد. این این چور گفته شده در موضوع آیه این معنا بخصه شده که در یک قصه خارجی بود من هدفم از این کوندن قصه این بود که راجع به کلمه و تدلوبه ها علال حکام آیا مراد از حکام در اینجا قضا هم قاضیه یا مراد از حکام در اینجا به اصلاح سلطه سیاسیه نه سلطه قضایی یعنی حاکم و امیر و پادشاه و تدلوبه ها علال حکام اگر این مورد درست باشه قصد درست باشه معلوم میشه که مراد از حکام در اینجا همون قاضیه چون پیغنبر با عنوان ولی عمر و با عنوان حاکم جامعه اسلامی حکم نفرموندن ما مثلا قضاوتی بین این دو نفر قرار بگذارم پس معلومی میشه آیه موردش در باب قضاوت هست و تدلوب ها علاله این نیست مراد سلطه سیاسی باشه این بحث رو کنال اینجا عرض کردن خب این بحث طویل و عزیز، حالا من به مردار اقتصادش اینجا از کردم این بحث در اینکه در ادهی از آیات و روایات هر دوم این کلمه جا به جا شده همون حدیث معروف عمر نهنزله امدارم یاد عمر که تون هست نه حدیثی که عمر نهنزله زام ساده بعد از اینکه انبجره این بینه همون بین هم منازع از اون, اون که بحث بحث قضایی بعد اینک که یر جمانه در و سلطان در روایت امرونا همزلیم دو طائفه اس بردو شده که قاضی و سلطان که اصطلاحا سلطه سیاسی است بعد حضرت که می فرموند به اینها مراجعه نکنید اینها تابوتن بعد که می گه پس چه کار بکنید می شوند فقید آلمی پیدا بکنید آخرشان فعیمی قد جلد دو حاکما همین بخص مرضوی دلات فقی هم چون همین حدیث هم هست این قصد برای دارید که لفظ حکمه و حاکم و تحکیم در اینجا هم آمده ازدهی معتقدم که این حاکمن امام نفان قاضی هم. چون رو دیگه داریم که قاضی هم اینجا امام فرمود که حاکمن مراد سلطه سیاسی هم هست یکی از راه که اصواد شده برای دلات فقی همینه که کلم امام قاضیان. فرمون تقریب جلتو و حاکم و چون در سؤال قضاق و سلطان آمده هم قضاق آمده و هم سلطان قضاق کنایه از سلطه قضایی و سلطان هم کنایه از سلطه اجرایی پس این که فرمون جلتو و حاکمه یعنی هم قاضی و هم حاکم هم اداره سیاسی جامعه که که فرمون سلطان هم لیکن اونی که اصحاب ما معروف فهمیدن همون قضاوته فرنیجه از و حاکمه گفتن حدیث صدر حدیث از به بحث قضاوته این را جلیمین اصحاب ما بین همون منازعتون فیدین و میراست این مراد همون قضاوته خب صابر من به خاطر همین صدر و از, از معاصلی مترخیدم به جایت دیگری قرار دیگری اقامه کردیم بحثش اینجا نیست کردن نمیم کنم با این یه بحث خاص خودش اون چیزی که الان الان عرض میکنم در کتب ما بیشتر اصطلاح روش شده اینه اگر قبار بکار ببرن قاضی و بار اینو گرفتن به باب قضا برن. اگر حکمه بکار ببرن یا به باب حکومت میبرن یا به باب افتا فتوا دادن مثلا اگر الفقی حکم بکردن اما متعارفه یک قضا داریم یک حکمه داریم در خود قرآن هم هست افا حکم الجاهلیه یعقون حکم در اینجا مراد همون قوانینه پس ما یک حکم داریم یک قضا متعارف الان که شما اینه متعارف قضا رو در سطه قضایی به کار میبریم حکمه رو یا تو فتوا و یا به اصطلاح در به اصطلاح اون قانون کلی به اصطلاح یا تفاویکی که طرف میده اینه اصطلاح نیست اما این دو تا اصطلاح در قران جا به, جا به کار برده شده میخوام خب اینو بگم در روایات هم همینطور اینو خوب دقت این خیلی تاثیر داره یک کلمه ساده است من ارجونو مثلا و غزا رسول الله به شفعه و حال داذر لازر و آل اینجا اون روایاتی که ما داریم توی روایات ارجونا همین در حساب عبدالله به سر احمد احمد المحمد اونجا هم آمده این رواد از سراغه خودشون از ابو از ابوالت ابو من در اونجا دارد قضا رسول الله به شفعه و قال لازم این قضا در این معناه که یک اختلافی بوده پیغمبر حل کردن خیلی فرمونه ندیجه یک اختلاف روایات ما داره روایات اهل سلم معروف رویات احرسانت این اختلاف نداره اشتباه نشه تو کتب احرسانت این قصه سماره فبن جندر که سری درختی با اون انصاری اختلاف داشت و حضرت لازره رو اونجو بکار بردن نیست در اینجا تعبیر قضا داره تعبیر قضا ما زیاد ماشاءالله در فقیر و غیب فقیر و علیان در خود قرآن هم قضا داره آیه مبارکی و ما كان للمؤمن انما لو اینجا این قضا که اینجا آمده مراد قضاغت مثلا قضا رسول الله به مراد به وسیقه بوده اختلاف بوده یا قضا رسول الله یعنی حکم رسول الله پیغمبر قانون قرار دار بحث اختلاف اینه پیغمبر بانونی قرار دازه نام شفره اذا قضا الله و رسولی و امر نه این که باب اختلاف باشه مراد باب قضا هست باشه خب به یعنی به اصطلاح و ما کانل مؤمنه ملا مؤمنه که اگر حکم الادی قضا در اینجا لانه حکم اگر حکم الادی بود و حکم نبوی بود اصطلاحا ما حکم الادی رو میگیم فرایز حکم نبوی را میگهیم سنن اگر فرایز لالی و سنن نبوی بود حق ندارن از او دست بردارن پس کلمه قضا در حقیقا گاهی اوقات به معنای این قضا به معنای خورت و خسومت غالبا متاخره گاهی اوقات در خود قرآن و در روایات رسول الله قضا به معنای تشریعه قضا رسول الله تشریعه ما در ذیل حدیث عمر بن هم اونجا توضیح دادیم و عرض کردیم البته خیلی هم حرفش مال ما نبود مجلسی هم در نرآت الاخبار در ذیل حدیث عمر بن حنظله داده که شونی که مثلا غیره ببخشید در ذیل حدیث ان الله فرز در وقت تفرید اونجا چند مقام بر رسول الله توضیح داده یکی از مقامات ایش بر رسول الله جعل شده قراردادش در سر خدا ان الله فردا رسوله اون اخبارن تشریعی تو روایت ما هم داره که خداوند نماز و دور پر است و بعد پیغمبر دور است یا در مغرب یک درخات اضافه کردن که این مطلب در او تاریخ شناسان هم اشتباه نشه خلافی حرفی هم از عمر نقل کردن در کتب اهل سنت هم از عایشه یعنی پیغمبر اکنم از وقتی که مبعوض شدن که نماز نیخوندن نماز درکعکی بود و متفرقه بود تا سال پنجم پنجم مبعث نماز در پنج وقت شد این آیه عقل سادر رو که شمس سلاق صبح معراجه شب که معراج واقع شد این آیه در روزشه که جرقی اوقات خمسه رو رسول الله ویان کرد و پیغمبر جرد کردن اوقات خمسه تا سال 15 از مبعض یعنی دو سال بعد از هجرت تا 15 سال در اوقات خمسه تا ده سال در اوقات خمسه دو رو که از نماز میخوندن وقت پیغمبر رو که مغرب اضافه کردن این مجموعه این ما که این جعل رسول الله از کنم چند بار در بلد ربایت که به از اشکال داره و ذهن میاد از خط تاریخ در روایت اهل سنت تعیین نشده در روایت ما تعیین شده که شب نیمه ماه رمضان بوده به عنوان ولادت امام مشعبی صحیح بودی روایت شب نیمه ماه رمضان در سال دوم از هجرت ولادت امام مشعبی است در روایت ما داره که به خاطر ولادت ما مشعبا در این اضافه نماز را اما این در روایت اهل سنت ما در ما هم, هم که میکنه خدا ده ده کردن خدا نه پیغمبر جعل کردن خدا این جعل پیغمبر قبول کنه چون جعل اساسا مال خداست دیگه خود مال پیغمبر من در توضیح این تفریزه توضیحات از هم جاش اینجا نیست حالا این شده دیگه باز اگه فرصت که داره نه تا این تفسیر در چه سالیه بر در روایات احتمالاً در این در سال چهارم هجرت. این وقت با این نماز نمی‌کنه بعد از در همون شب مبعثه از همون شب مبعث خداوند به پیغمبر تفیض من خودم در بحث 14 15 سال رفت در بحث به تا ها رو یک رابطه بحث تفیض چند جلسه اونجا کل درود تفیض رو خوندیم بحث کردیم الان میتونم مراجعه کنم به هر حال احتمال اینکه در همون مبعث باشه ارواح تا احتمال به اصطلاح سال فوضیه این مطلب جایی دیگه است که الان جایی اینجا مناسب نیست خیلی و کیف ما خوب دقت بکن من از بحث خارجی که میشودم کلمه حکمه و کلمه قضا که ما خواستم کنم الان تو اصطلاحات ما اینجور شده حکمه رو در قانون میگیریم و در باب تطویه میگیریم قضا رو در باب رفع خصومت متعارف ما اینطور میگیم باب قضا و در قضایی متع تو روایات هم تا حد زیادی همین. اما این نیست که در مجموع آیات کتاب و روایت پیغمبر و حتی روایت مانسال مثلا اصحاب ما فعیم جلت و حاکم هم و قاضی و این که فعیم جلت و حاکم هم ظاهر حکومت هست مشهور اصحاب ما ازش فعیم جلت و حاکم قاضی هم. این یه بحثیست که لطافت داره البته این دوتا دوتا ماده یکی حکمه حکمی قاف و زاد و قضا یک تشابهاتی با هم دارن این شاده با دیگه وقت دیگه من بحثایی لغوی رو مطرح رو کنم جای کنجا نیست لیکن توی حکم این خابیده چون ما عرض کردیم ما گاریم مدرور تصور نه که گاریم مدرور تصوری رو هم تحلیل میکنیم توش خابیده تمام شدن کامل شدن و توش خابیده خللی توش نباشه حکم اینجوره ولی زن لفظ محکم در پارسی هم از همینه کتاب رو از آیاتو از همینه تو حکمه خوابیده شده یک کار رو انسان دقیق انجام بده هیچ یک زرده یک نقطه جای خلاف توش نباشه یک نقطه مثلا دیواری درست کرده حتی برنزی یک نقطه جای باشه که مثلا جای سیمان بوده خالی باشه نه کاملا همه رو پر و دقیق انجام داده این رو در لغت عرب حکمه میگن قضا هم تقریبا شبیه اینه البته اون اتقان تو قضا نخابیده توی قضا خادیده تمام شدن و برداشتن و کامل کردن فقواهن نسب سماوان قضا هم قضای تقریبی در قرآن استعمال شده هم قضای تشریگی در قرآن استعمال شده هر هم درسته تو خود قضا تو اشتقاقاتش بخش خاصی داره که جا شون دینیه فقط اشاره وار عرض تفسیر از جای دیگه مثلا در کتاب قضایی که ما داریم مثلا معاضیا کتابی در قضا داره 10 تا معنا تا 15 تا معنا برای قضا ذکر کرده ما اونجا عرض کردیم اینا یک جامعی دارن اینطوریه که 15 تا معنا باشه پس در باب قضاوت و لذا هر دو میشه به جای همدیگه به کار برده بشه یعنی هم حکمه به جای قضا هم قضا به جای حکمه این دوتا خود دقیقه سر این که در قرآن هم گاهی قضا آمده مراد حکمه هست گاهی حکمه آمده مراد قضاست این رو برای تفسیر و تود لوبه ها ایلال آیا مراد از حکام خصوص بلات عمر و سلطه سیاسی و عمره و پادشاهانه شاه یا رئیس جمهور یا غیره سلطه سیاسی مراده یا مراد از حکم در اینجا اصلا مراد قضاوته در همون آیاتی که راجع به سهت بود که دیروز خوندیم که آیاتی نخوندیم اگر مراجعه شد وقت مراجعه داشتین کیفه یا حکمونکه و انده هم و توراد فعداد جاوکه فهکم به این هم و عرز انه هم اونجا فهکم مالا قضاوته هسته و اینجا الان دقت فرمودن در شعر نزولش قزاوتی بوده دو نفر با هم اختلاف داشتن در پیش پیغمبر پیغمبران همو لا تَعْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل وَتَجْرُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّام اینجا حکامی که از, از تو احتمال دارم که اینجا املرتیس مثلا چون پیغمبر که بعیده که مراد به خود پیغمبر باشه به هر حال احتمال هم داره مراد حاکم باشه اگر حاکم باشه سلطه سیاسی میخوره یکی از من اشکال در روایت هم همینه که آیا این روایت ناظر به سلطه سیاسی یا ناظر به به حساب باب قضا انصافاً در مجموعه آیات کتاب و حتی اگر روایت عمر بن حنظله که اصحاب این جور فهمیدن اصحاب اینی جز و حاکم نه قاضیان فهمیدن حاکم به معنای قاضی اگر این باشه انصافن انتباغش بر رشته واضحه حالا بعد اگر اشکال دیگریز بعد مسئله میکنیم اما اگر ما حکام باشه یا بگیم اعم از حکام و هم باید به تصرفات روایت اینها که تا اونجایی هم که من نگاه کردم ولی علم و در شیعه از اهلوی در زید آیه تفسیری من نگیدم اونه که من نگاه کردم اونه نگاه من همیشه کافی نیست یعنی استثنا هم داره. نیست احتمال داره. اصلا فرضمون مجبور میشه خودتون به این اموالتون. احتمال داره. من با ترسید اید ما تو زن از نظر زیر آیه نیست توی دیگه ایسه حکام دیست علایه که ماکا شرحی راجعه به این که این آیه ناظر برشده است من الان تو ذهنم نیدم در رواس احلیقی ولی علم و اون وقت ایشان در کتاب این یک مطلب یک مشکل دیگری که در آیه مبارکه هست علا غیر از تعدد معنا بعدش فهمیده از لترکلو فریقن من اموال ناسه بل اسم انتون تعلمون لذا احتمال دادن که مراد از این آیه مبارکه رشته نباشه در اینجا در این کتاب و حالا من عرض میکنم ایشون در صفحه 339 در این جلد دوش داره که قیل یعنی الودیه این مراد از ل... تو دوبه هایلال حکام لسه اکلو فریقم من اموال ناس که اوقات ردیعهی بوده فیش شخص میدشم میخواسته انکار بکنه بیانه هم نبوده میاده به قاضی میگفته آقا من کمی پوله به تو میزن این اینطور گفته شده این سه احتمالی که در این زیر آمده تو مجموع بیانم هست من از خاصوی نرمو اما به عنوان قائل اینجا کده ابن کده این حسن، که مورد حسن برسیست وقیل خوبه مال و این بیشتر گفته شده زفع کدو فریغن من اموال ناس به لعه گفته شده مال یکیم الَّذی فی او دل اص... اوسیا او یرفه یر و الحكام ازا طول به لیختت بعضهو و تقوم فل... لهو فی الظاهر حجتون و حسن مال یکیم رو بخورن می رفتن به قاضی می به حاکم می حالا یا قاضی یا حاکم این که میگن یا قاضی یا حاکم حالا این توضیحشم عرض بکنم گفته شده در مثلا زمانهای قدیم حتی بعدها در عصر اسلام گاهی اوقات خود قضاوت شعن حاکم بوده خود دقیق ولی به حسب ظاهر قضاوت بوده شاید هم شده که اختلافی کردم در متوکل عباسی که به فقها مراجعه کرد آخرش به قول حضرت جواد اخذ کرد متعارف بوده که قضابت هایی که سنگین بوده تا پیش خلیفه هم که آهایی که جو میگه که اینجور میگه چه کار احتمال این هست که ولذا احتمال این هست یک نوع ترابطی ما بین حاکم و قاضی بوده مثلا اگر مطلب مهم بوده پیش حاکم به معنای امی آم می رئیس میبردن وقت اینا می بردن پیش اون رئیس که این مال یکیم رو بخوره و قال از زجاج بله تعملون ما یوجه بوه و ظاهر احکام و تسکون ما علم تو من نهاره حقی شبیه رشوه بله این هم راجب بسند ظاهرش اینه که اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه بگیم همه رو میگیره اختصاص هر یک چیز. چیست اختصاص به رشوه نیست ممکنه ودایه را هم بگیره مال ایتام رو هم بگیره هر نحنی که انسان سعی بکنه به خاطر فرستازن اموال چون تدلوبه ها به ها به اموال برمیده اموال رو مثل دربی قرار میده برای حکام حالا یا قاضی باش یا حاکم هر دور میگیره و لتر کلو من اموال ناسه به یعنی شما میدونید که مطلب با شما نیست هم با شما نیست برای اینکه که مردم رو تصرف رو به این کار انجام میدید احتمالا این که آیه مواله که هر دور رو بگیره احتمالش خیلی قویه انصافا احتمال ضعیفی نیست بحث دیگری بود که دیروز مفرح کردیم برمان این اینکه روش مراجعه بشه که آیا اینجا چرا لا افتاده البته اصلا نجد در مصحف ابی لا هست اما مشهور در مسارف موجود لا افتاده لا فعلا وجود نداره و تو دلو به هایلن حکام از تو که از سی در هم جام کرده از سی به کرده که اینجا لا در محل... تو دلو در محل یعنی نونش به نصب افتاده نه به جهز این منصوبه دیروز از کرده گفته شده که این در زبان عرب هم سابقه داره مثل لا تأکل سمک و تشا در لبن که مراد اینه علاقه اینجا مراد از لبن در اینجا شیره که الان بهش حلید میگن علاقه الان بهش لبن میگن بالبن لبن رو به ماست میگن اما به شیر لبن شیر رو به اصلاح که اینجا مراد واقع جمعه و مراد جمع بین این دوست است. نه مراد تک تک یعنی اگه مراد جمع باشه منصوب استعمال میشه به تقدیر ان هم. مثل همین شعری که معروفه لا تنهان خلاقن و تأثیر مثل او، تو مثلا از یک اخلاقی نه نکن، مثلا همون دروغ نکنیم خودم دروغ میگی و تأثیر مثل او. آرنه لیک، بله. اضافه کاری او، برای که لیک اضافه کاری. این مراد این جمعه. از یک طرف بگید مثلا خیانه نمی‌کنیم ول نکن، از یک طرف ما خود انجام یک طرف, انجام طرف دروغ خودم بگو دروغ نکنیم خود هم بگو. ویبرت نکن و وقتی ویبرت این مراد جمعه وقتی جمع باشه میگن در راحت عرب منصوب میاد لا هم خلقه و تحتیه مثل هم این آیر هم همینجور معنا کرده و که انصاف قدریه اینه که این آیه اینجور معنا بشه دلیل میخواد که دید دلیل واضحه میخواد من دیروزون آیر هم خوندم ظاهرن ظاهرا مثل آیه دیگه لا تخونه لا و رسول و تخونه و امانات کن نه اینکه اینا مجموعاً مراد نه شده باشه بینیم بلا سخونه امانات از که این تحبیر بر قرآن هست در سوره بقره هست ما هم خیلی الان مثلا خونده بیروز ولا تلب سلحقه بالباطل رتک تومول حق و انتون تعلامون آیه 42 همه سوره بقره یک 42 یا 43 همه خلاف زخته آیه پس بر این این احتمال که نفس باشه به آن مقدر خیلی بعیده بسیار بسیار بعیده و این که در قرآن هم دو تا نه کشاره هم بالا اومدون هم د리즈 هم خوندون هم هست اونی که من احتمال میدم ولی علم عند الله علم عند الله لیس الا الله یعنی با ارتكازات عرشی اینجور میفهمه گاهی اوقات لا تکلوا و انواده کن بیه کن به باطل و تدلو به هایلالحکام که آمده لا تکرار نشده شاید اشاره به این باشه که تدلو افس و تأکلو شدید یعنی به عبارت این اخراب خود تدلو به هایلالحکام از مسادیق اکلمال به باطل یعنی اگر لا رو می که دو تا حکم بود یکی اکلمال به باطل یکی ادلاع به ها الالفکان دقیق میکنم دو تا خوف همون حالا که لارنه روزه میخوام بگن این ادلاع بالاموال الالفکان این همون اکمال رو باطل که ما این هم مثلا رو اونه این غیر از لا تن هم خلقه و تأثیه او اون لا تن اون تأثیه مثله او رو نیست اونجا مجبوری واقع رو برنه جمع بگیریم درست کردیم یعنی در حقیقت اونی که در اونجا خیلی قبیهه آرون علی گلاف علت التعویمون اون که خیلی آره بزرگی این که انسان بگیه یک کاری نکنیم خودش انجام بده این خیلی آره یعنی باقرین نمیفهمیم اونی که خیلی زشته جمع بگیم بذار اما در ما با باقرین میفهمیم که زشت حرام جمعشه شد مال به باطل و ادلاع بایدار بکنه خود به حالا میگم اگر راست باشه نستادر سیوی که انجام هم چم گرفته وابرامن معه گرفته این صافن استثار باطلی اگر راست باشه هر حرف باشه از کردم خیلی از مطالب رو ما به دلالات سیاسی به دست میاریم در اونجا واضحه و در اونجا هم واضحه و تأکیه مثله مثلاق لا تنهان خلقه نیست در اینجا خیلی واضحه که تدلوب ها الالحکام یعنی یک نوع تعبیر و ادبیاتی بوده در اون زبان در زبان عربی که گاهی اوقات عکس جمله بر جمله بوده اگر عکس جمله بر جمله بوده لا رو تخرار می دو تا حکم مستقل لا تأکل و اعمال کن ولا تدلوب جمله بر جمله گاهی اوقات بخواستن نه شبیه عکس مفرد بر مفرده لا تأکلو اموالکم و تدلو تدلو رو اصف بر تأکلو بگیرید به فکر خود تدلو رو اصل بر تأکلو بگیرید ولذا لام رو هم تکرار نکرده وقت این فایدهش اینه اگر تکرار میکرد لام رو دو تو حکم یکی اکتمال به باطل یکی ازلایل بکن تکرار که نکرده میخواد یه حکم اون حکم عام لا تأکل و اموال کن بل باطل در این کتاب قرط رو مخصوب و مجهود و چقدر اناویم رو در لا تأکل و اموال کن بل باطل او بود حرص بدی نیست لولا کلمه بینکن چون اموال هم متعلق است به عقل بینکن هم که ضربه متعلق است به عقل اکل اموال بین جامعه این مبادلاته مثل محسوب رو نمیگیره. یعنی یه چیزی جابجا جا شده این جا به جایی باطله ظاهبه درست نیست من این وقتی هم ارز کردم یه بحثی بعدها در قرن دوم مقرح شده آیا باطل مسابقه با فاسده یا نه ممکن است بگیم یک چیزی باطل هست اما فاسد نیست معروف بین ما و های ما الان اینه که این دو تا با هم مصابقه باطل و فاسد یکیه وکن از ابا حنیفه نرشو دو تا هست ما الان و زا این معامله همچنانی که حرامه باطل هم هست فاسد هم هست نماز اگر باطله فاسد هم هست این طور نیست که باطل غیر از فاسد باشه دقت فهموندید حالا اون بحث می شده در کلار مقارسه به بیگه مناسبه اونجا اشاراتی خواهد شد لذا به ذهن ما میاد اگر این حرف به درست باشه که واقعا من معرفه انصافن در آیه درست نیست و انصافن اونی که ما الان از آیه مبارک می فهمیم اینطور می شون اولا در مسائلی که داد و ستت در جامعه هست در مسائلی که بده و بستانه به کسی پول می دین نه که یک طرف شما می اگر یک طرف درستین لسه اکلو فریق من اموال ناس بله این, این دوباری ما یک طرف است اما اگر دین اکمه این اکل بین جامعه هست یک نوع دازستده در بین جامعه است این اگر باطل باشه این جایز نیست این اکل محرمه از, از خود تحریمش هم ما فساد رو داره ما در که بطور ضمنی هاشیا هم کردن ما و کیجی بحثه بحث ملازمات عقلیه تصریح دارن در کتب اصول این رو ملازمه فهمیدن میشه مشخصه ملازمات عقلیه. دیگه مفهومه مضاف هستی بعضی از کرده که استادش بره و نایان کن سوالی ایشون ملازمات عقلیه ملازمات عقلیه ایشان بحث نهی در عبادات و محاملاته. اون تصور اینه که نه خودش لا ترکلو اثبات و غرمت میکنه، به ملازمه اثبات و بطلان میکنه. کنه روشان تو تفکر مثل منمو آزدی دیگران و مشهور علمان ما که این رو تو ملازمه گرفتن این رو پرمیدن خود نه لا ترکلو اثبات و غرمت میکنه. لکن لیکن غرمت ملازم است با پساد پس اون معامل هم پاسد بعد اثابت اثبات هم که این طور نیم توضیح شندان این سهبه تحلیل لغوی و غرفیش هم بیان کردیم. ظاهرا نه هر دور اثبات میکنه اولویتی ملازمی مدرح نیست این لا لا ترکلو هم اثبات میکنه انسان باز نقضی که این کار پشه این اسمش نبیه اسمش حرمت حرمت مثل که دست کسی رو ببندن این اسمش حرمت و هم اثبات میکنه که این عقل باطله این درست نیست اصلا فاصله این اسمش همونیست که گفتن فساد بکنی ورگی مثلا گفت شما تو این ورگه ننیمیست نامه ای بفرستم تو این ورگه ننیمیست اون برداشت نوش این ننیمیست در دو چیده میگه یکی دست که یه کنیم با برداشتی دو حالا اگه لجبازی کرده شما ورگه پاره میکنیم من گفتم که این پس, یه پس داشته. شاید برای در معاملات چون در معاملات گفتن که تو اشتر شما با شرکت های خاص نوآور معامله نکنید این مورد این فقط حرمت اگر ثابت شد معامله کرده اون جنس رو مصادره میکنه این معنای فساد یه دین تو دارن میان با این شرکت دارن می‌خوان دلارها به قرض بدن، باید به هر حال این دو که با هم یکی این که اگر شخص راست برای معامله ولی لزاب به خاطر مخالفت با نه زندانش می‌کنه. به خاطر اینکه این معامله را انجام داد، خب هر ثاذه معامله می‌کنه. امید این حبیب صاحب نظر که این, این, این دو تا با هم تعامل میشن. تحلیل لغنی رایی می کنم سابقاً گذاشتی که تکرار تو بحث اصول موسیقی اخیرم بیگه مناسبی مفرج پس در خوب دقیق روی کنید روی نقطه این لاسطه که دو اهمالتون بینکون بالباطل به نظر ما هر دو مطلب رو اثبات میکنه هم نهی میکنه دست طرف رو میبنده هم اثبات تساب میکنه این که بگیم باطل غیر قیل اساس نداره فاسد و یکی که این تو هموی فرمی رنجرد وقت هستان آورین وقت تدروب این یکی از مسادیر اکلمال به باطله. این اکلمال به باطل این ادلاع اموال حکام این هم اکلمال به و ولذا به همین دلیل هم سابقا ارز کردیم از این آیه مبارکه هم حرمت رشده درمیان هم حساب رشده. یک ماشین رو به قاضی اون ماشین هم از قاضی میگیرن این فساده میگیرن یعنی شما بی خود گرفتید شو هم ممکن است قاضی رو پس لفت مست بکنن هم ممکن از زندان بکنن این ماله نهیشه ماله قرمتشه هم اون وسیله ای رو که داده به قاضی از ایش برمیگردن این ماله فساده یعنی هم جانب تحریمی درش وارد میشه هم جانب وضعی که فساد مح پس آنها به ذهن ما میرد که آیه مبارک اطلاق داشته باشه عموم داشته باشه شامل رشوه بشه احتمال داره شامل انواقی هم که انسان به حکومت ده غیر از شامل اون هم بشه این احتمالش از نهایت اما قرار ما تیه هم قراره رشوه رو میگیره و در کلام ست امتون